آفرین بر روان و فردوسی، آن هما نژاد فرخنده او نه استاد بود و ما شاگرد، او خداوند بود و ما بنده نام خداوند جان و خرد تز این برتر بر نکترد سلام از میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز انشالله سلامت خوش خوب موفق شاد باشید خدا شد میکنم این دومین سالی هست که ما در روز بزرگ داشته فردوسی بزرگ و شاهنامه او در برنامه پنجر و به مهتاب در خدمت شما هستیم و استاد فریدون جونیدی که عمرشون رو برای شاهنامه گذاشتم سلام استاد درود بر شما این شمل بود؟ این شعر از آن انوری است و انوری یکی از بزرگترین شاعران ایران در اون تردیدی نیست و شاعران چون یه چیزی رو پدید میارند که نبوده و پستی بهش میبخشند بنابراین نسبت به کار خودشون خیلی غرور دارند و در سطوح بالا شاعران بزرگ با همدیگه در حقیقت یک نوع رقابت همیشه داشتند که بخی از اینا به دیگری تنه زده و هیچ کدوم حاضر نیستن از اون پایگاهی که دارن خودشون رو پایین تر ببینن و انوری یکی از چند شاعر بزرگ ایرانه و وقتی که چنین داوری درباره فردوسی میکنه شما باید ببینید که شامنامه فردوسی یعنی شامنامه سرده خودش منهای هایی که در درباره غزنگی بهش کردند در دست انوری بوده و انوری وقتی که شاهنامه رو به پایان می این بیت پایانی شاهنامه اینه که می بینه خبان کسی که دورت خوش و رای و دین پس از مرگ برمند کند آفرین و انوری می گه آفرین بر روان فیدوسی. یعنی اون چیزی که خود فیلدوسی خواست عمل کرد این عمید. که بگه که او استاد و ماشاگرد نه فلسفه خیلی خیلی بالاتره. او خداوند بود و ما بنده. البته تردید نیست که مقصود اولی این که خدای جهان آفرین نیست چون در زبان فارسی به هم میگفتن خداوند. خداوند. خداوند سخنه. خداوند خداوند در حقیقت من بود. میگه من بنده او هستم. او خداوند یعنی پادشاه من بود. خداوند سخن و این کلام ساده و زیبای مختصر همون است که فردوسی خواست از فرزندان ایران و من خیلی خوشحالم که دو بار اتفاق افتاد که دو شب همراه شد با یک رویداد بزرگ تاریخی یکی این که دو شب نوروز ما برنامه داشتیم که توانستیم برای نوروز سخن بگیم و یکی دو شب بزرگداشت فردوسی است و نه با نبا یکی دو روز تاخیر درست روز همون روزی برد. که باید باشه البته کسی که این بزرگ داشت رو گذاشت اندکی اشتباه کرد او باید روز 25 بحمن رو ماه رو میگذاشت چرا؟ و اسفند ماه رو میگذاشت برای که هایان شاهنامه است و فردوسی خودش میفرمد که سرمامد کنون نامه یه به ماه سپند روز ارد روز ارد روز 25 هم هر ماه بوده چون یک بار دیگه من ارز کردم که ایرانیان و باستان برای هر روز یک نام داشتن روز اول او رامزا, روز دوم بهمن، روز اندیشینیک یعنی یعنی صفت خداوند عشان و روز سپم یعنی برترین پاکی و راستی و زیبایی که اون هم صفت خداوند و همیطور میرفت مثلا مهر و آبان و خرشید و بهرام و باد و ماه و تیشتر نام های زیبا رو و برخور رو بر روی روزها گذاشته بودن. هرگاه که نام روز با ماه برابر میشد اونو جشن میگرفتن مثلا 16ام هر ماه مهر بود این در ماه مهر اگه سروصدا میشد جشن مهرگون 13ام هر ماه تیر هست وقتی با تیر انجام یعنی هم زمان میشد میشد تیرگان جشن تیرگان که جشن پاشان بود و بزرگدور آب آبو خیلی خیلی برای ایران و باستان اینو مفصل میگفتند و اقوام دیگرم که از ماه اروپایی‌ها جشن آب‌پاشان از ما گرفتن آسوری که یکی از گونه های ایرانی بودند و ارامنه همچنین هنوز این جشنو دارند. به هست روز ارد روز 25 پنجوم هر ماه بود. و در ماه اسفند روز ارد در ماه اسفند از سال چارسد هجدی شانمه رسید. اگر کسی که این نام ها رو گذاشت که من نمیخوام حالا نام رو ببرم اندکی در این زمین مطالعه میداشت میتونست بهتر انتخاب بکنه و روز اسفند رو اسف ب... بگیره. حالا مهم نیست مهم اینه که ملت ایران بیدار بشه نسبت به مفاخر خودش و از همه بزرگتر نسبت به پدر و آموزگار و استاد و جان و روان ایران فردوسی بیدار بشه و در حقیقت این بزرگتر بزرگ شرکت کنه من همین امروز دو سخن... سه سخن... دو سخنانی داشتم با این برنامه سبا فردا هفته پیش از کردم سفر. بام امداد من به طرف سپاهان میرم و بعد از یعنی ساته بعد از زور در نجفا باق سخنانی و وقتی که برگشتم روز بعدش در زرین شهر و شبش در دانشگاه دولتی شهر کردنی فرد از فردا و چهار تا سخنانیه امروز تا سخنانیه بوده دیروز یک سخنرانی در دانشگاه شهید بشتی داشتم روز جمعه من مشر بودم یک سخران رو یعنی این مثل اون نسیم اواخر اسفند که میخوره به تن ای درخت ها و اینا بحار. رو بیدار میکنه که بیدار بشید باد باها اومد و کم کم کم کم این برخ ها و سبز ها اینها جون میگیرن و زیبایی جان جهان رو فرام میگیره این مثل همونه البته برای بزرگان دیگه بزرگ داشت کردشن ولی تا اینجا که من میبینم ملت ایران به ویژه جوانان غیرتمند و ازرتمندش که به فرهنگ میاکان دل بسته هستن خیلی خیلی زیاد در این جشن ابراز آمادگی میکنن و ابراز شادمانی میکنن من امیدوارم که این ابراز آمادگی و شادمانی تبدیل بشه به پژوهش در شاهنامه تا ما بدونیم که کی هستیم در کجا یونکو خدمت ما چه کردند برای جان ما قرار بود ادامه داستان دار و اسکندر رو صحبت کنیم از شاهنامه فردوسی اما با توجه به اینکه با باز به اشاره که استاد فرمودن فردا روز بزرگ داشت فردوسی بزرگ و شاهنامه اوست و در این بار ما صحبت میکنیم در باری فردوسی صحبت میکنیم در شاهنامه او صحبت میکنیم من در همین اوقات تلفن‌های برنامه‌ریزی خدمتتون عرض میکنم با ما تماس بگیرید پیامک های شما بسیاری از پیامک های شما در همین آقاقین قبل از برنامه اومده بسیاری از شنوندگان و سادجان تبریک گفتن به شما شو. به ما به برنامه پندیر خایر بود و همینطور شبکه فرهنگ که حالا در خورست های مختلف من خواهم خوند ارز میکنم خدمتون 220-400-825 220-400-825 دویست و بیست، پنجصد و هشتاد و هشت، دو سفر و بیست شماره پیامک سی هزار مدیر روابط مومی، آقای هشت، سی هزار پنجصد رادیو ببخشید امروز باشون صحبت میکردم به پایگاه تلارانی ما به سایت رادیوفرهنگ مراجعه بفرمایید من امروز دیدم که از اردی به هشت برنامه ها آماده روی سایت هست شما میتونید برنامه ها رو بشنوید اگر دستگاه دانلود داشته باشید میتونید دانلود بکنید از اردی به هست درست با چهار روز یا پنج روز اختلاف یعنی عقبتر هستند یعنی من دیدم برنامه هفته گذشته آقای دکتر جونیدی روی سایت بود و این خبر خیلی خوبی بود برای شما بود حتما اگر میخوایید بشنوید با عنوان برنامه و موضوع برنامه در پایگاه تلارسانی شبکه فرهنگ dot .ir. ir و ارز میکنم از طریق مهواره هم از که خارج از کشور اقوام دوستان آشنایانشون هستند هم مهواری خاطر هم نیلسد میتونید بهشون بفرمایید هم الان باششون تماس بگیرید نه اگر هستن در خارج از کشور میتونند اگر هم زمان بشن، نزدیک باشند به ساعت ما اونها هم شاهنامه فردوسی رو باز کنن در مورد خود فردوسی و شناهمند میخوایم می صحبت میخوایم باشند بریم و صحبت میکنند اما شاهنامه رو باز داشته باشیم. را از میکنم خدمتون که ها رو میخواستم بگم یکی دوتا مطلب دیگه هم بودش که به ذهنم رسید الان یه دفعه یادم رم خدا به من کمک کنه که امشب نمره خوبی بگیرم از قصد جنگی امید خدا حمد خودتون باستم از استاد بپرسم که الان اون رو نمیپرسم چیز دیگری میپرسم و اون این هستش که فردوسی بزرگ هماس سرا بود و شما بارها فرمودید که شاهنامه داستان زندگی ایرانیانه داستان ایرانیان هستش آیا ایرانیان با این زندگیشون با توجه به این زندگیشون زندگیشون سراسر هماسه بوده؟ بالاتر از هماسه است برای که هیچ تاریخی در جهان نداریم که این گستره را داشته باشه اروپایی که که کشورشون یونان باشه دو سال پیش پدیدار شد کشور روم دو هزار سال پ... پیدا شد بعد از اونا فرانساست که هزار سال پیش پدیدار شد بعض اونا این انگلیسه که دوزان درگاهی اونجا را گرفتند برای قارت و آدم پشی امریکا هم که چهارست سال بیشتر تاریخ نداره. بنابراین اونا دامنه تاریخشون تا اکثر میشه به 2800 ساله. و به همین دلیلی که تاریخشون بسیار حریر است اونا دیدن که در جهان پیرامون به ویژه در ایران رویدادهایی رخ داده که بیشتر از این 2800 ساله بنابراین استلاحی درست کردن که دوران تاریخی و دوران پیش از تاریخ اگر ظرف اونها کوچیک و گنجایش نداره ظرف ما بزرگه به پهنه زمین و زمانه و ما رویدادهای خیلی تر از 2800 سال رو در تاریخ خودمون داریم مثلا وقتی که شما می‌گین که یک جنجومه جمع یک دختری در شهر سوخته پیدا میشه که 4850 سال پیش اونو عمل جراحی کردن و بیماریش آب بوده بوده هیدروسفالی میگن و عملش موفق بوده چرا این جزء تاریخ ما نباشه وقتی که ما استفاده 1400 ساله در گنج دره هر سینی کرماشان داریم چرا این اینجورد تاریخمون نباشه؟ شگفتنگیز اینی که ما تاریخمون با آغاز آفرینش در حقیقت پیوند میخوره و با واجه کیومرز به داستان زندگی انسانها وارد میشیم اما کیومرز در زبان اوستایست گهه گای گهه نیجان مرته یعنی میرا یعنی اینکه جون جان در جهان پدید میاد و ویژگی جان اینو که از بین بری روزی بمیره اون وقت این کیومرس تنها جان انسان ها نبوده چون ما میبینید که بعد از اون دو شاخه ریباس هم بشن و همقدر پدید میاد یعنی زندگی گیاهی بعد از این گیاهان کم کم انسان ها وجود میاد یک در یک سکه بزرگتر هستش که پیدا شده و طبق معمول رو پایان اونو به غارت بردن الان در آلمانه در کتابی به نام ایران پیش از محمد چاپ شده و اونا میبینن که این سکه کیومرسه و کیومرسی که تصویری داره پایهای لاغر و انبوه پشمه و گوشهای بلند و چهره بین انسان و حیوان و یک چوب دستشه یعنی افزار یعنی پیدا کردن افزار افزار برای, کار برای زندگی و در میان بقیه جانواران رو زندگی بکنن اون آلمانی گفتند گفتن این پیداست که ایرانیان و باستان میدونستند. یعنی این چیزی که بعدا داروین اعلام کرده اینا رو میدونستن پی بردن و این, این تصویر کاملا داره نشون میده که کیومه یه چیزی بین, بین انسان و حیوانه اما از این شگفتر در بندهش ما داریم ما میبینیم که کیومه هست وقتی که مرد از استخوان‌های او روی پدیدار شد از مغزش جیوه پدیدار شد از خونش ارزیز پدیدار ارزیز جیوه که حرکت میکنه از نقضش سیم پیدا شد از جان در در رفتنش زر پیدا شد از پاهاش پولات پیدا شد میبینید این نشان از این میده که پیدایی جان در جهان نه تنها پیدایی جانداران و گیاهان بوده بلکه حرکاتی که در جهان پیدا شده که اون حرکات کم کم منجر شد به پیدایی کانی ها و فلز ها و قد کشیدن کوه ها و پدید آمدن دریا ها و رودها، ها همه جز تاریخ تاریخ پیدایی جان در جهانه این خیلی خیلی شکفته و البته تا به حالی چیست به اینا توجه نکرده من در کتاب داستان رو به زودی به امید خدا به دست خواهندگان خواهد رسید می‌بینیم که این یا ما چه گستره عظیمی رو برای تاریخ در نظر داشتن که بعد کم کم میرسه به وجود انسان دیگه اون وقت بعد می‌بینیم خانه‌سازی شروع بشه رام کردن جانوران کم کم یک که پدیده‌های پدیده های خوب زندگی و دانش که اون پدیده خوب رو به وجود میاره همه اینا جز به تاریخ ایران باستانه ما یک سرمایی داریم که در کتاب بندیداد از اون یاد شده در زمان جمشید من بارها ارز کردم که جمشید دوران از زندگی ایرانیانه یه شخص نیست است که زندگی... با... یعنی همزاد تابندگی همزاد خورشید یعنی دوران تابندگی زندگی آریایان اه... که سراغاز اونم پیدایی جامعه هست اینا همه در تاریخمون هست بعد اه... یه سرمایی پدید میاد میخواد پدید بیاد که اغورامزا اه... یعنی خرد جهان با جمشید درمین روزه که این سرما خواهد آمد و به زودی اه... گروه های انسانی و جانوری و گیاهان اینا تباه خواهند شد و تو باید برای این سرما چاره بیندیشی جمشید میپرسه که چه باید کرد خرد جهان به او پاسخ میده که باید ور بسازی در مورد ور همه گونه داوری کردن ور همونه که در ورامین و در نیمه ور و در واره و در بار و بارو و برج و خانه چون خانه های پیشین تو زمین کنده میشد وقتی که خانه تو زمین باشه برف ورف بیاد و یخبندان بشه اونا رو فرو میگیره یه خانه‌ای باید باشه که اون خانه بتونه جلو برف و یخمندان استادگی بکنه و خوشبختانه اون خانه که در بندیزاد ازش نام برده میشه نمونهش در موزه ملی الان هست یه با هندسه ژاپنی اون رو پیدا کرده متعلق به 8000 سال پیشه که اونا میگن ماکت ولی من گمان دارم که یه مادری این خانه رو برای بازی فرزندانش ساخته در عباد کوچیک درست به هم تصیبی که در وندیداد اومده این خانه همونطور یعنی پنجره هاش بالا هست و دو روشنایی می یکی روشنهایی از خورشید و محط و ستارگان و دو روشنهایی که روشن آتش در پایینه اینو همه در وندیداد اومده در مینوی خر اومده در یک ساله به نام اوقید اچ اومده همه اون چیزهایی که در این کتاب اومده زمین شناسان رو در سرمای ورم چهار خلاصه می به من توجه کنیم آقای... هدایتی هستم هدایتی؟ یعنی میخوام این رو به شما چشمامون به من بینید شما میبینم که دارین الان پیامه ها رو بخونه <تصفح> ولی میخوام بدونید که چیه جریان این سرما بر بنیاد یافته های دقیق علمی امروز چارده هزار سال پیش اتفاق افتاده و ده هزار سال پیش به پایان نصیبه یعنی ما مقطع چهارده هزار ساله در تاریخمون داریم حالا این از صدزار سال پیش به این طرف چهار تا سرما بزرگ جهانی اتفاق شده که زمینشنناسان امروز اسم منار ورم ور یک دو سه چهار. این ور چهار که من گفتم که وحشت نکنید یک کو دو و سه هم پیدا شده یعنی پیدا کردم که در داستان ایران خواهد اومد وقتی که تاریخ ما به یک چنین عظمت و گستری داره. اونطور با افاق دور زندگی انسان و زندگی جانوران و زندگی گیاهی و پدید آمدن زندگی و حرکت که در جان جهان و گیتی پیدا میشه که اون حرکت منجر به پیدایی فلزا میشه همه اینا در تاریخ ما هست این سرمون رو بلند بگیریم به کهکشان ها بنگریم به تاریخ نیاکانمون و به زندگی برجست نیاکانمون بنگریم اصداد جنویدی، استاد فریدون جنیدی عزیز فردوسی که بود؟ فردوسی آرمان ایران بود فردوسی امید آرزوی نهفته جان ایرانیان بود فردوسی روان ایران بود فردوسی آینی تمام نمای زندگی نیاکان بود فردوسی آسمان ایران بود فردوسی خورشید آسمان ایران بود فردوسی جان ایران بود فردوسی جان ایران بود پیامک های زیادی اومده و این پیامک ها همه از تبریک بوده همه تبریک این روز بوده و تبریک به شما بوده و تشکر از سلاحش شما بسیاری از این پیامک ها بوده تشکر از برنامه پنجره های رو به محتاب بوده که در این یک سال و چند ماه در باره شاهنامه صحبت کردیم و حتی زودتر با امید خدا داستان ایران بیاد داستان ایران خیلی به ما کمک میکنه اوستاد جنیدی که ما فردوسی رو بیشتر بشناسیم شاهنامه رو بهتر بشناسیم بیشتر بشناسیم حسی هم به شما میگی و شما میفرسید شما میگید ثبت کنید که داستان ایران بیاد ما ثبت می کنیم شما یک سال از داستان ایران خبر دارین من سی و دو سال از داستان ایران خبر دارم ببینید بر جان و روان و من چه گذشته ولی دیگه از حموپیچو بیرون اومد و به از یزدان تا تابستون این به دست جوانان جوینده و پوینده ایران خواهد رسید این علاقه از شما کجا شما؟ چطور به دست آورید استاد جنوبی چی شد این علاقه به فردوسی به شاهنامه فردوسی تردید نداره که راونشاد پدر بزرگوار من بابام بودید راونشاد او او این حالت رو در من وجود برد ولی من خیلی شگفت انگیزی برای شما بگم که در سنین خیلی کوچیک یعنی پایین خواب‌های شگفت عجیبی می‌دیدم درباره ایران که اینا منو در حقه تحریک میکرد و من همیشه مثل یکی مثل فرض بکنید که یکی که یخی که روی یکی چیز فلزی گرم باشه مرتبا در حال لرزش و در حال التحاب بودم از این سبونسو از این صوبه صوبه از بید و الوت خداوندم منو روانما شد روان فیدوسی روان نیاکان من از کودکی نسبت به نیاکان ارجمندم رو خیلی خیلی احساس افتخار میکردم و همیشه سینه من آینه در مهر نیاکان بود گمون دارم که این آینه مرتهب لرزان همیشه سوزمون بلاخره اینقدر سیغل یافت تا نیاکان ارجمند ما تصویر خودشون رو روی این آینه انداختن من از کودکی با این حال احوال روبرو بودم هیچ گاه نبودم هیچ گاه دور نبودم اما ویرایش شاهنامه و پیشتر از اون داستان ها روستم پهلا با رو که من پدید آوردم به دنبال اندیشه بود در سال 1155 من با خودم فکر کندم خب این جوانان رقوم کرده رو چطور باید یک کاری بکنیم که ایران رو بشناسن یه مدتی با خودم می اندیشیدم. بعد از این که با خودم اندیشیدم فکر کردم خب حالا این باید این جوانان چاری ندم غیر از این شاهنامه بخونن. من یک بار دیگه هم گفتم در همین جا حالا این چون چبه بزرگ داشته شاهنامه هست دوباره تکرار میکنم به خاطر سوال شما بعد با خودم اندیشیدم که خب اون خیلی خوهرزادی داشتم که جوینده بود چونزه هستالش بود چونزه هستالش بود و با خودم فکر کر سه کیلویی رو دست یه دختر بچه ها سر بچه و عپ خوام که بخونه اینو پس یه مدتی فکر بکن من این مدتی اندیشیدم اندیدم فکر کردم که باید که داستان روتم رو جدا کنیم از شنامه که در اون همه چیز هست از گذشت و ایسال و جانتشان در راه ایران و راستی و پاکی و مردانگی همه این توش هست و بچه ها ایران رو هدایت میکنه خوب باز از خودم پرشتم که داستانه رستم نیمی از شانوان رو دربر میگیده من چطوری این کتاب بزرگی دست بچه ها بدن باز بی اندیش. من اندیشی و به اینجا رستم یک روز که داستان رستم رو ما بخش بخش کنیم مثلا زال و رودابه رستم و افراسیاب حرفان رستم اینشه کتاب که میشه دست جوان ها داد و نوجوانان جوان داد ازشون خاص بخونن همون لحظه روش شانوانی که در دست الانما گگذاری کردم شروع کردم به نوشتم. در طول کار کم کم کم کم متوجه این افسوده ها اینا شدم که به شناما افسودم و ناچار میذای که اینا رو بزاردام یا بهش توجه کنم. و خود کار من رو کم کم رحمون شد به اینکه به ویرایش شناما انجامید و درست سی سال رو این زمان گذاشتم فرخند من که البته در این سی سال رنج و درد فراوان بر من گذشت رنج و درد فراوان بر من گذشت و از اون میان پرواز فرزند نازنین و بزرگوارم جان جان خودشو در راه مهر به یک بیمار ایرانی از دست داد همه اینا بر خود تحمل کردم و خوشحالم که بر سر دست خودم شاه رو گرفتم و هدیه کردم هم به ایرانیان امروز و هم هدیه کردم به روان نیاکان گرامیون شاهنامه چگونه پدید آمد شاهنامه به دنبال یک پرسش تاریخی و من برای که این پاسخ بدم بعد دو رویداد از شاهنامه رو برای شما بیان کنم رویداد نخست که بعد از اینکه захوک یعنی بابلیان بر ایران چیره شدن و هزار سال ستم کردن مادون از خود جوز به جز کشتن بجوز قورتو کشتن و سوختن شده بربدی دست و دیوان دراز زمینشینا بودی سخون جز به راز همه اینا در صفه های باستانی مو که از حفظ سال پیش پیشتر بودن نشون داده شده آتش سوزی دار در ایران همه همه جا کشتار و سوختار هزار سال ستم بالاخره مادران ایرانی تمید اندیشیدن که پسران رو به ها گریز بدن که در اونجا تحت نظر بزرگتر را بزرگ بشن در دو زمینه، یکی زمینه معنوی و کسب فضائل در حقیقت همون معنوی و دیگر اینکه در ورزش و توانایی تن آماده بشن برای مبارزه با دشمن. اینجا هم می‌بینیم که اون جوانان با نام فریدون و مادران با نام فرانک شناخته میشن می‌بینیم که فریدون روزی به نزد مادر میاد و از مادر میخواد که یکی دانشی داستانی بزن یعنی سخنی بگو که از راه دانش پذیرفته من باشه پدر من کیه چون به اینجا رسید که فرزند برای بودوزی حبا پدر میخواد و پدر من کیه و فرانک به او دلداری داد که پدر تو آبدین بود و به دست روزوانان زخاق کشه شد چه ماهی من تو رو پنهان نگه داشتم و بالاخره تو رو به کوه بردم و سپردم به این مرد دینی و دودمان و خانواده ما همه به باد رفت و تمام کشتارها سوخته شد و گاوان ما همه دامهای ما از بین رفتن و این داستانه فریدون بیه که خب حالا کنون کردنی کرد جادو پرست من رو برد باید به شیر دست مادر خیلی من دومیه که نه زود هنوز هنوز تو اون قدرت نداره که با زحاک رو جنگی باید منتظر باشیم و خودتونو رو ترمیت کنیم تا اینکه به اون زمان برسیم و که البته اون زمان رسید داستان دوم داستان سهراب تهمین است سهراب وقتی بزرگ میشه میاد پیش مادرش با از مادرش رو پدر من کیه؟ باز, باز این تحقیق تاریخی و مادر میگی که تو از تو فرزند نام بر رستمی جسام نریمان و از نیرمی و جهان آفرین تا جهان آفرید سباوری چه رستم نیومد پدید رستم میپرسه از سر پرخاش که نبرد نژادی که چونین بابد نهان کردن از من چه آوین بابد چرا تو حالا نگفتی من فرزند رستمان فرانک تخمین گفت که به دو دلیل دلیل نخوص که اگر افراسی میفهمید که اینجا فرزند رستم در این نزدیکی ها هست تو رو و من داغتار میشدم دلیل دوم اگر رستم میفهمید که فرزندش اینقدر بزرگ شده، و اینقدر برا من شده باز تو به نزد خودش میخوند باز من خسته بودم به این دلیل نگفتم. را خوب مکنون کار میکنم من لشکر فراهم میکنم و میرم اون ایران من انگیزم از تخت کابوس رو به پاوت کردم بیجن و توول سوافت تمام شهر ایران آتش میذام پدرم میارم اینجا افراسیاب رو میکشم چون رستم پدر باشد و من پسر نبا بگی که یکی تاج بر یعنی پدر من, من پادشاه پا میکنم و خودم پهلوان دربارش میشم متاسفانه تمینه مثل فرانک فرزند راهنمایی نکرد و تأمینه به فرزند نگفت که همین توسو و گیو و گودرز و روحام و پهلوانان ایران همه و ایران همه این کسانی بودن که همباره رستم جان خودشو فدای میکرد میکرده رستم سپر ایران بود در برابر بلایا تمام زندگی و آرمان رستن حفاظت ایران و نگهبانی و پشتیبانی از ایران بود و از پهلوانان ایران بود ستایش که از رستن شده از هیچ شخصیتی در دنیا نشده و همه اینا نشونه اینی که رستم جام خودش رو وقت به ایران و بزرگی ایران و نجات ایران و حمایت و پشتیبانی از ایران رو پهلوانان ایران کرده سخنانی که سوراب میگه خلاف آرمان های پدرش. متاسفانه 20 هزار سپاه سپاهی از دشمن ایران میگیره با دو سردار تورانی که بیان ایران رو فتح که برای آبادانی ایران بله. در هر اون داستان بسیار دردنگیز رخ میده و فرزند به دست پدر میمیره و ایرانی دیده نشده که به اینجا برسه و عشق از چشماش نویزه. علت اینکه که تهمین خوب نکرد حالا این پرسش تاریخی یک بار انجام شد و اونه که وقتی که ایرانیان که اسلام رو پذیرفتند و در اسلام وعده داده شد که همه مومنون همه با هم برادر هستند و تسلط خلفا و بنی امیه و اینها و بنی عباس اکس اینه نشون و از طرف خلفا خیلی ستم به ایرانیان شد و ایرانیان حالا پرسش تاریخی رو برابار سفا میکردن. ما کی بودیم یا کانو ما کی بودند این پرسش ها وقتی که مکرر شد مکرر شد در یک کانون شعلور شد و اون کانون کانون دل یک پهلوان بزرگ ایرانی بود و نام ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق توسیب پور بابک خراسانی او تاسخ داد به همه اینا و از بزرگان و از دانایان و کشور خواست که در توسک گرد هم جمع بشن و تاریخ گذشته ایران رو بنویسن خوشبختانه این نام اون کسانی که جو... گفتم یک بار اینا رو ولی باز تکرار میکنم عیب ندار چون بعضی تازه به این برنامه میپیوندن و به ویژه امشب باید اینا گفته بشه اون کسانی که گرد هم جمع آمدن به فرمان آنو شهروان ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق توسی اینا این چار کس بودن یکی موبد شادان برزین از توس یکی موبد ماقوی خورشید از نیشابور یکی موبد از پور بهرام از سیستان و یکی پهلوان بزرگ خراسانی ماخ ماخ یعنی بزرگ مه و مس و مزین همه یعنی بزرگ ماخ از شهر هرات اون روزگار که بین و توس و هرات خط نکشیده بودن و این چهار کس در توس گرد هم آدن و شاهنامه را از محتمال پهلوی که در دست داشتن ترجمه کردند به فارسی زیر نظر ابو منصور معمری و زیر ابو منصور و این کار در سال 346 به پایان رسید پس از این که به پایان رسید و مردم دل بسته بودن به این داستان و ملاتبا در محافظ خودشون میخوندن دقیقی آماده شد که این رو به گونه شعر برمیاره و هزار به شعر گفته دقیقه و خیلی روشنه که اگر قرار بود دقیقی شاهنامه بگه شاهنامه به این پایگاه و جایگاه نمیرسید بلکه گفتار خیلی سوست بود گفتار گفتار رو یک مرد خراسانی بی آورد. یک پهلوان علسه میدان فرهنگ ایران که آسمانه ترین سخن و سنگین ترین سخن و سنگیده سخن رو به کار برد برای سرگذشت می نبود و من گمان دارم که مادر ایران به دقیقی گفت که تو کنار بشین من فرزند دیگری دارم و کنار بنشین دقیقی یعنی As your own finish. <laughs> درود به روانه پدر بزرگ ایرانیان ابو محمد بن افران درود به روانه شادان پرزین ماهوی خورشید یزدان داد ماخ ابو مسور درود به روانه همه اونوی که دل در کرد مهر ایران دارند ما فردوسی در پهنه آوردگاه فرهنگ ایران پدیدار شد فردوسی پدیدار شد و مرتبا با خود میاندیشید که آیا من دنبال کار بگیرم یا نه مرتبا در التحاب بود که من با منم بمیرم و کار نگفته بمونه یه دوست بسیار مهربان داشت که او دوست فدروسی رو ترقیب کرد که برنگی خطیه به اینکه یعنی برانگیخت که به نامهٔ خسروان دست ببره به شهرم یکی مهربان دوست بود که گویی که با من به یک فرست بود مرا گفت خوب آمد این رای تو به نیکی خرامد مگر پای تو گشاد زبان و جوانید هست سخن گفتن پهلوانید هست شوین این ناموی قسروان بازگود به این جور نزد مهان آبروی یعنی آبرو کس بون برای خودت در نزد نیا کن کی بودیم؟ نامش مثل ابو منصور یا ابو منصور معمری در آهنگ گفتار شانمه نمی بنابراین این نام رو نیورده نام ابو منصور نیورده این در پیشگفتار شاهنامه عبو این نام ها باقی خوشبختانه خدا خواست که این بزرگانی که شاهنامه رو ترجمه کردن از پهلوی به فارسی نامشون از بین نره بعضی از نسخه های شاهنامه که موجود هست به عنوان پیشگفتار از پیشگفتار شاهنامه عبو که خود شاهنامش از بین رفته استفاده کردن اینا موند و روانشاد قذبینی عبدالبهاب قذبینی اینها در بیست مقاله آورد این نمونه های مختلف آورد و سنجید و اکنون در بیست مقاله قزوینی هست این نام ها زنده مون نام اون دوست دیگه نمیدونیم اما این هست که فروسی خودش فرمود که به شهر ایکی مهربان دوست بود که کویی که با من به یک پوست بود یعنی اون گفتاری که سعدید میگه یاد دارم در جوانی با دوستی همچه دو بادام مغز در پوستی اون گرفته شده از این سخن فردوسی است و شما وقتی یه بادام میشکنید مغز رو دو قلوب پیدا میشه میبینید که چطور همدیگر رو گرفتم یعنی مکمل مکمل هم, هم هستن بنابراین اون دوست مثل خود فردوسیه روان شاد او با فردوسی در جهان مینون زندگی میکنه برصد فردوسی آغاز کرد آغاز کرد به دین نامه چون دست بردم فراز یکی پهلوان بود گردن فراز جوان بود و از تخمه پهلوان خردمند و بیدار و روشندوان از تخمه پهلوان بود یعنی پسر ابو منصور بود این شخص اسمش امیر منصوره مرا گفت این برای عبرت روزگاره این چند که میخوام بخونم مرا گفت که از من چه باید همین که جانت سخن برگره باید همین. به چیزی که باشد مرا دست، رست، برارم، نیارم، نیازم کس همین داشتم چون یکی تازه سیب، یعنی مثل یک سیب تازه از من نگهداری داری میکرد، نگه بانی میکرد. که از باد بر من نیارید نهیب چون نامور گم شد از انجمن که از باد سر به سهی در چمن نزوم مرده بینم زنده نشان به دست نهنگان و مردم کشان.